آرزوی روح ربازارتارز امشب آمد و بیشتر از سایر شبها نزد من ماند مندت قابل توجهی در سکوت نشست و بعد آغاز به سخن کرد ربازارتارز پال امشب به قصد گفتن سخنانی نزد تو آمدم که باید در خلوت اسرار نگاه داری من در حال ایجاد تحولی کامل در گرایش ها و تمایلات تو هستم اکنون تو از عشق سرشار شده ای و همین عشق عشق تری را به سویت میکشاند. کشاند ای به عشقی که خداوند از برای تو دارد بیاندیش. آنگاه شاید به تصور اندکی از عشق من و عشق دیگران از برای خود داشته باشی فاش بگویم عشق آرزوست و آرزو احساس است بنابراین هنگامی که احساس عمیقی به هرچه داشته باشی چیزی را آرزو میکنید؟ از تو میپرسم، آرزو برای چیست؟ آیا میل به ایجاد نکبت، آزار و یا زخم زدن به اندو است؟ یا به نیت خیر و سعادت مادی و معنوی اوست؟ تو در این انتخاب آزادی، شلون چه ختمش منفی را برگزینی زندگی از سردرگم و ناام میشود؟ اما اگر ارتعاشات عشق از خود ساطع کنی، آنگاه عشق هم به تو باز خواهد گشت و زندگیت موزون شده و به روانی یک ماشین پیش میتازی این را هم بگویم که عشق مطلق است اما درک آن به به وضعیت آگاهی فرد متغیر است بنابراین هیچکس نمیتواند بگوید چگونه می‌شود تعیین و کرد که آگاهی کتی تا به جایی گسترش یافته باشد که فراتر از آن ممکن نباشد از طرف دیگر عشق موضوع عقیده نیست از مجرای عمل ظهور می کند مرجع و مقامی نمیشناسد شناسد بلکه عرصه ادراک و فعالیت است. رشد کردن به طرزی گلیز ناپذیر اقتضا می کند که بالاترین درجه عشق را از برای آنچه با ما کمال سازگاری را دارد به خرج دهیم بالاترین درجه شادی هنگامی نصیب آدمی می شود که به درک و همکاری آگاهانه با قانون خداوندی نائل آمده باشد به منظور برخورداری از تراوت و سرزندگی افکار خود آدمی باید از عشق اشباع شده باشد عشق محصول عواطف است بنابراین ضرورت محض ایجاب می کند که عواطف تحت تسلط قرار گرفته و بر مبنای عقل و دلیل و سوار باشند این عشق است که نیروی حیات را به ذهن و قلب آدمی وارد می و در نتیجه عشق در آنها جوانه می‌زند. قانون عشق همه یه را که برای رشد و بلوغ معنوی از نیازداری برایت فراهم می‌سازد. به این ترتیب اگر خواهان عشقی این را بدان که تنها راه رسیدن به عشق ایثار آن است به این معنی که هر هرچه بیشتر ایسار کنی بیشتر دریافت خواهی کرد تنها راه ایسار عشق همین است که خود را آنچنان از آن آکنده کنی که به مغناطیس عشق بدل شوی نحوه عمل قانون عشق به صورت ساده از این قرار است فکر مجرایی برای عواطف است و مثل نور و برق از قانون ارتعاش تابعیت می یعنی فکر انرژی حیات بخش خود را از مجرای عواطف و تحت قانون عشق دریافت می و به تابعیت از قانون رشد شکل میگیرد و به ظهور میرسد. فکری که محصولی از روح است و در نتیجه الهی و معنوی است و از طبیعت آفریننده در دارد. این را هم بگویم اصلی که به فکر قدرت تحرک میبخشد تا با آن با موضوع تفکر ارتباط پیدا کرده و در نتیجه با تمامی تجربیات ناسازگار تسلط یابد عشق است این یک اصل ذاتی در کل هستی تمامی فلسفه‌ها همه مذاهب و شاخه‌های علوم بشری است از عشق راه گریزی نیست احساس به فکر حیات می‌بخشد، احساس آرزوست و آرزو عشق است چنانچه خود را از عشق اشباع کنی شکست ناپذیر می شدی این چونین که راه به ظهور رساندن عشق این است که آرزویت را برای عشق تربیت کنی آرزوی تربیت شده، ابزار قدرتمندی برای به فعل درآمدن قانون عشق است. اینک به خاطر ثبت در تاریخ هم که شده بگرار این را بگویم که مردمی وجود دارند که نسوج لطیف مغز خود را با حکم فرما کردن رکودی پایدار به انجماد و تحجر کشانیدند تا جایی که تمامی ارسه های زندگیشان بیتمر و عقیم شده است. هل جایی که قدرت عشق درک شده باشد مستاق این حقیقت به چشم میخورد اسیر الهی نه تنها هوشمند است بلکه در این حال خود قماش هستی است و این قماش به خودی خود نیروی جاذبه‌ای است که الکترون‌ها را با عشق گرده هم می‌آورد تا اتم‌ها را بسازند اتم‌ها نیز به نوبه خود گرده هم فراخوانده می‌شوند و بر مبنای همان قانون مادیزه یا ملحون را پشکیل می‌دهند مادیزه شکل جسمانی می‌پذیرد بنابر این عشق نیروی خلاقه‌ای است که در پس پرده تمامی تجلیات هستی دست است نه فقط در مقیاس ذره و مادیزه بلکه همه ابوالم در کل آفرینش حیات معنوی همه چیز هر چه که در تصور درآید عملکرد همین قانون حیرت ها برای عشق است که موجب شده آدمی در همه اعسار بر این اعتقاد زندگی کند که باید مقامی اختصاصی وجود داشته باشد که به دعاها و تمایلات او پاسخ گوید و ها طوری دستکاری کند که با نیاز وی انتباه یابند از ترکیب فکر و عشق قانون مقابت ناپذیر جاذبه قهر یا هر قانون دیگری که بر مبنای دقیق علم ریاضی و است، شکل می‌گیرد. مجال تردید نیست، فقط مجرای توضیح است که می‌تواند ناکامل باشد. چنانچه قانون عشق به این خاطر که توسط فردی بی تجربه و ناآگاه به نمایش درآمده است، بیهوده به نظر آید، نمی‌توان نتیجه گرفت که ناپذیر ناپذیرترین قانونی که کل آفرینش آن متکی است. از درجه اعتبار ساغت است. در واقع چون این چفتی باید نتیجه بگیرد که به اندکی درک بیشتر از خدا نیاز دارد حتی در ریاضیات هم بهترین پاسخ مسئله همیشه با آسانی به دست نمی آید با سیغل هرچه بیشتر فکر یا خیش درون و گشودن افقهای برتر آدمی درجات بالاتری از زندگی را به تجلی می‌رساند. این تسکیه میتواند با سهولت بیشتری انجام شود. آدمی می با استفاده از تصاویر کلامی دقیق و روشن از قیدوبند مفاهیمی که او را به مراتب تحتانی طبقات اصیری پیوند داده اند رهایی یابد. ضروری است که او افکارش را با کلمه ادا کند و آنچه بخواهد اشکال بالاتر حقیقت را به کار گیرد، باید فقط از مصالحی استفاده کند که با دقت برای این منظور انتخاب شدند این قدرت شگفتانگیزی که موجب می شود آدمی افکارش را در لباس کلام بپوشاند وچه تمایز قلم را به انسان و اقلیم حیوانات است ما این را میدانیم دانیم که فکر خدایی آفرینش شکل را هدف خود قرار داده است و به همین منوال میدانیم دانیم که اندیشه آدمی نیز بیزقصه در تلاش است تا در قالب شکل به تجلی درآید ما میدانیم که کلمه یک شکل فکری و جمله مجتمعی از اشکال فکری است بنابراین چنان چنانچه کسی آرزو کند مطلوبش زیبا و نیرومند باشد باید اطمینان حاصل کند که کلماتی که قرار است این معبد را بیافرینند به دقت انتخاب شده و در کنار یکدیگر قرار گیرند رعایت دقت در ساختن کلمات و جملات بالاترین معماری تمدن بشر و گذرنامه او به اقلیم خداوندی است. سودماد را باور دار. استاد اک را باور دار. زیرا که منم استاد هستم و جز او نیستم. این همه ای آن چیزی است که از تو می‌خواهم. امشب به همین اکتفا کنیم چاپ